له چهارم وقتی تا اینجا را رونویسی کرد شیگکو از آشپزخانه با گفتن فکر می کنید ساعت چند است برای شام خوردن هم وقت بگذارید او را صدا زد شیگه ماتسو و با آشپزخانه رفت تا حالا سایای نمک زده خانگی می‌جوید و شام را به بعد ماکول کرده بود و یا داشت های بمباران اتمی را رونویسی می کرد. شیگکو و یاسوکو خیلی پیشتر شام خورده و یاسوکو به بسترش در اتاق انباری رفته بود. یاسوکو می خواست فردا با اولین اتوبوس به سالن زیبایی در شهر شین ایچی برود. امروز یاد رونویسی کردم تا ابر مکوری کوکوری و ازدهام و هر آوارگان در پادگان شرقی را رونویسی کردم. با این همه نتوانستم یک هزارم واقعیاتی را بنویسم که خودم دیدم. نوشتن کار سختی است. چیزهایی که شما می نویسید جزء کدام یکی از این ایسم است که می گویند. ایسم نیست. شهرهایی که من نوشتم اگر بخواهم چیزی به ناممش. رالیسم ناپخت است. حقیقت حقیقت است. آن ماهی لچداجا را خوب تمیز کرده ای؟ آقای کاتارو سایزن که آن را آوردند گفتند با احتساب امروز حدود نصف نصف ماه است که ماهی را پاک می کند. در رودخانه دوبوگاوا در پایین تالار کانون آن را سید و در خمره سنگی پاکش کرده است. در زمان جنگ درختان عظیم جینگو را به ازای قیمت مشخصی به دولت می فروختند. آقای کاتارو هنگام کندن ریشه این درختان در ملک خود خمره آب پخته ای با سنگ کشف کرد خمره پنجشش تکه شده بود اما در حال حاضر با استفاده از سیمان آن را سرهم کردند. شیگ ماتسو مقابل طبق چوبی چهار گوش پایدار نشست و کاسه ای را به دست گرفت که در آن مای قهوه رنگ ریخته شده بود. این نوشیدنی قبل از شام شیگ ماتسو ثاره جوشانده یک نوع گل شمدانی، دو کودامی، گندومک و اوباکو بود. غذای روی طبق، نیمرو، توربچه و بعد سوپ نام میسا بود که درونش ریشه گیاه معتره میتسوبا خورد شده بود. ماهی لچتاجو هم کنار آنها قرار داشت. بسیار عالی است. شیگه ماتسو با این جمله کاسه سوپ ماهی را برداشت. در خمره آقای کتارو همیشه چیزی پرورش داده می شود. زمانی که من آن را دیدم کف خمره را کاملا خوش کرده شن رودخانه ریخته و یک لاکپشت نرم نرملاک چینی را برای تخم گذاری داخل آن گذاشته بودند اما لاکپشت هیچ وقت تخم نگذاشت اواخر سال گذشته که خمره را دیدم هفت هشت تا مارماهی درون آن بود درون این خمره میشود هر چیزی ریخت و برداشت خمره آبی مثل چوب سرامیک است بهتر است در خانه یکی مانند آن درست کنیم اما همه اینها فقط در حد حرف بود. خانه شیگه ماتسو بالای تپه کوچکی قرار داشت. پس نمیشد مانند ملک آقای رو لوله های خیزرانی آب به آن بکشند. در ملک آقای رو آب بندی جلوی آب نهری درست کرده بودند که از کوه جایاما در پشت خانه جاری می شد. از آنجا هم با استفاده از لوله های خیزرانی آب را به خمره وارد می کرد. البته اتصال تکه های شکسته خمره با مهارت انجام نشده بود ولی از دست شکاف زیر برآمدگی وسط خمره آب با خوشانسی به اندازه مناسب نشت میکرد کرد چه مارماهی، چه قزلالای آبهای آزاد و چه قزلالای بعد باران امکان نگهداشتنشان وجود داشت آقای کتارو یک سال از شیگ مادسو بزرگتر بود در طول جنگ وظیفه خرید برای در و همسایه را عهده داشت و دو بار برای خرید به هیروشیما آمده بود هر دو بار هم با داشتن سوقات شوری شکوفه‌های گیلاس به خانه شیگ ماتسو در هیروشیما سر زده بود بار نخست برای خرید مایع صابون و چربی خوراکی آمده بود مایع صابون ماده خارج از عرف شوینده ها بود این مایه کالای بازار سیاه بود و تولید کنندگان با زیر پا گذاشتن قانون آن را به صورت مایع چسبنده قبل از ساخت صابون قالبی درست و در قوطی بسته بندی می کردند. چربی خوراکی قسمت های چرب گوشت بود که در کارگاه های تهیه غذای سربازان به علیق اسبا هنگام درست کردن کنسرو بریده و جدا می شد به این چربی ها تععم می دادند و در جعبه های به ابعاد ده در هفت متر به قیمتی حدود ده سن می فروختند چون این اجناس بازار سیاهی را آقای کتارو در خانه شیگه ماتسو با کلی گفته های پر اقراق بسته بندی می کرد و با گفتن اینکه من از دوران پدر شما پیک هستم آنها را تا ایستگاه به دوش می کشید. بار دوم که آمد با اینکه یک گوتی کنسرو چربی خوراکی بیشتر نتوانسته بود بخرد باز هم خوشحال بود و برای تشکر از شیگ ماتسو در زمین باز نزدیک آنجا که بر اثر برنامه پراکندگی در روستاها ایجاد شده بود دامی به نام کبوتسو برای شکار پرندگان کوچک نسب کرد شیگه ماتسو مثل کاری روزانه هر روز به آن دام کبوتسو سر می‌زد، اما یک بار هم نشد که پرندهای کوچک به دام افتاده باشد شیگه ماتسو به یاد می‌آورد که همسرش شیگه کو برای چیدن جوانه‌های سلمک زیاد به آن زمین خالی می‌رود. همچنین به یاد میآورد که سلمک ها را دور می میچیدند و میخوردند. دامی که آقای کوتا در هیروشیما نصب کرد بعد از آن چه شد؟ تابستان در آن زمین سلمک ها به صورت انبوه رویدند. دام آقای کتا یک پرنده را هم به دام نیداخت. ظاهرا روش نصبش بد بود. در زبان رسمی به کبوتسو چه میگویند. شیگمات از روی میز داخل و اتاق نشیمن لغتنامه را آورد و جستجو کرد مخفف کبوچی، کبی است یعنی دامی که گردن پرندگان وحشی را قطع می کند به یاد می آورد که هنگام نسب کبوچو آقای کتارو در حالی که انگار با خودش حرف می زد، با داس خیزران های برید شده را صاف می کرد واقعا از نظر قضا بد جور در مزیقه هستیم حتی در واحد آشپز خانه کارگاه تهیه غذای سربازان و علیق اسبا هم توضع میسو و جوابگو نیست، خیلی به هم ریخته فردا ظاهرا حتی برای تهیه شدسورو و میساشیرو هم نمیتوانم کاری کنم. حتی نمیشود فهرست هم نوشت. آن زمان از نظر غذا همه زندگی سختی داشتند. که من فکری کردم. شیگه ماتسو فکر خود را به زبان آورد. لطف میکنی برنامه غذایی خانه‌مان را در دوره جنگ فهرست کنی؟ به شکل صورت غذا هم باشد خوب است. شاید هم نتوانی یک یک آنها را به خاطر آوری. لطفا همین فردا فهرستشون کن. میگویید به صورت فهرست، اما شاید نتوانم چیدن سلمک را توی بشقاب یا نوتهای موسیقی ژاپنی را بنویسم. همینست. همین است. همین جزئیات برنامه غذایی است. برنامه غذایی بسیار فقیرانه خانواده شیزوماشیکه ماتسو در دوره جنگ. این را باید به یادداشت‌های بمباران اتمی اضافه کنم. چرا زودتر به این فکر نیفتاده بودم؟ اگر اینطور می‌خواهید باشد، چطور است بعد از این در خانه این کار را انجام دهیم؟ یعنی بعد از این هر سال در روز یادبود بمباران اتمی در ششم ماه اوت، درست مطابق صبحانه روز ششم ماه اوت آن سال غذا بخوریم. صبحانه آن روز را میتوانم به به شکل عجیبی به وضوح آن را به یاد دارم. آن صبح چه خوردیم؟ شد سروی صدف خوراکی. به جای برنج هم سایای پوست کنده. صدف خوراکی هم برای سه نفر تا بیشتر نبود. آن هم صدفی بود که روز قبل از آن من و یاسوکا در اطراف پل میوکی جمع کرده بودیم. شیگه هم به یاد آورد. بر آن صدفها داندانهای سفید و شفاف دیده می شد. بنابراین شیگماتسو نه به شوخی که با شکایت به شیگکو گفته بود در این زمان حتی صدفها هم دچار سوء تقضیه شدهاند. چون برنامه غذایی از وظایف خانم خانه است به عنوان یک وظیفه از تو درخواست می کنم چه به صورت یادداشت چه به صورت جملات مکاتب به هر صورت که نوشته اشکال ندارد؟ لطف کن فردا بنویس. من میروم بخوابم. به این ترتیب شیگاتسو وظیفه ثبت خاطرات را به او تحمیل کرد کاری که شیگه کو به آن عادت نداشت فردا روز کاشت بود شیگاتسو در مقام رئیس یک خانواده کشاورز ادوات کشاورزی را مرتب کرد تیغه کجبیل و اهرم‌های فلزی را تمیز کرد و میخایشان را دوباره کوبید تیشه و داس را تیز کرد اره را هم برق انداخت داست دروی برنج را هم تیز کرد و با روغن به آن جلا داد. علف های هرز اطراف ساختمان را وجین کرد و سرانجام برای سرکشی از استخر به خانه ی آقای آتسویاشی رفت. این چونین نصف روز تمام شد. یاسوکو برای فر شش ماهه به سالن زیبایی در شهر رفت. بعد بسیار زیبا در ساعت پنج برگشت. تا آن وقت شیگکو یادداشتش را به عنوان زندگی غذایی زمان جنگ در هیروشیما نوشته و تمام کرده بود. آن را با قلمو و بر کاغذ نامی ژاپنی نوشته بود. زندگی غذایی زمان جنگ در هیروشیما زندگی غذایی قبل از بمباران اتمی در هیروشیما را در ادامه خواهم نوشت اما قبل از آن به طور خلاصه درباره وضعیت شهر، و فعالیت مردم مطالبی می نویسم. به موجب قوانین نظارتی آن زمان، مواد غذایی اصلی، ماهی و سبزی به صورت توضیع دولتی به فروش می رسید. اعلامیه های توضیع و سایر بیانیه‌ها از طریق تابلو اعلانات درون شهر یا تابلو اعلانات شوراهای محله در بین مردم اطلاع رسانی می کردند. به خصوص تابلوهای اعلانات شوراهای محله مانند رگها و مویرگها وظیفه رساندن دستورها را انجام می دادند. حتی کنار این، مأموران دولت هم بسیار به شوراهای محله اهمیت می دادند. برای همه گیر شدن آن، سرودی مردمی در بردارنده مفهوم و هدف شوراهای محله را به صورت صوتی و تصویری زبط و بین مردم توضیح کرده بودند. اول آن سرود این بود. طب توپ طب, طب هویدا. شورای محله، پنجره چهره چهره‌های آشنا، نگاه کن، تابلو اعلانات را، با تو میگویند با تو میگویند روز توزی، جلو های توزیعی سفی طولانی تشکیل می‌شد، چون کمبود مواد غذایی شدید و توصیف‌ناپذیری وجود داشت. پس طبیعی بود که این وضعیت پیش آید. در بزرگترین فروشگاه شهر هم کمبود اجناس وجود با اینکه باز بود اما انگار تعطیل بود با وجود این جلو این فروشگاه هم ناگهان صفی از مشتری شکل می گرفت. افراد جلو و عقب صف با گفتن جملاتی مثل در این فروشگاه چیزی می فروشند یا باورم نمی شود چیزی بفروشند با هم اختلاط می کردند. همه چیز کمیاب شده بود. بنابراین میخواستند چیزی گیر بیاورند هرچه شد شد حتی نمی توانستند از یک تکه کاغذ هم چشپوشی کنند. آن زمان پول ارزشش را از دست داده بود. اگر برای خرید سبزی به خانه کشاورزان حومه می رفتی، چندان تمایلی برای فروش سبزی در ازای پول نداشتند. اما وقتی به آنها لباس می دادی، دیگر هیچ مشکلی برای فروش نبود. دلالان و فروشندگانی دور از چشم ناظران شروع به فعالیت در بازار سیاه کردند، که به آنها سوداگران سیاه گفته میشد کلمه سوداگران سیاه نامی برآمده از داد و ستت در بازار سیاه است که از زمان کمبود مواد غذایی در دوره جنگ وجودی مستقل پیدا کرد این واقعیت فرزند نامشروع جنگ بزرگ بود که مانند خاطری تلخ نمی توان از آن زندگی سخت جدایش کرد. در مورد توزیع گندم و برنج که غذای اصلی هستند به یاد دارم در ابتدا هر نفر سهمش 3 سه گو و یک شاکو بود خیلی زود به جای گندم و برنج اغلب سویا و بعد آن هم برنج خارجی و تفاله چلانده شده سویا توزی شد بعد مقدار آن کم و دو گو و هفت هش شاکو تفاله سویا در روز برای هر نفر شد برنجی که ابتدا توزی میشد برنج سبوس دار بود. اگر آن را در ظرفی با چوب برنج پاک کنی نمی خوردنش سخت بود. پس قرولند کنان با کار شبانه آن برنج ها را پاک می کردیم. این کوبیدن هم باعث می‌شد تا مقدار سه گو و یک شاکو برای هر نفر به حدود دو گو و پنج شاکو تقلیل یابد. احتمالا همان موقع همسر آقای میادشی از و شورای محله، گرولند و شکایت های آن دوره را شنیده بود. هنگامی که همسر آقای میاچی برای خرید غذا به خانه های کشاورزان می رفت، داخل ترانوای خط کابه از نفر صندلی کناری شنید که در این اواخر برنج توضیعی سه گو شده است. این داخل کتاب درسی بچه ها کلمه ای تغییر کرده است. منظورش این بود که در شعری از کتاب درسی بچه ها در روز چهار گو برنج سبوزدار به در روز سگو برنج سبوستار تخییر کرده است. به همین دلیل و به خاطر هماهنگی با مقدار توضیح در کتاب درسی بچه ها نظر کردند. بعدن از آن زن شنیدم که این شعر یکی از بهترین شعرهای شاعری به نام میازاوا با کنجی است. شعری بینظیر که زیبایی قناعت و صبر زندگی مردمان عادی در آن میدرخشید. همسر آقای میاچی گفته بود در یک روز چهار گو را به سگو تغییر دادن بدعت است. اگر بچه ها واقعیت را بفهمند چه، شاید تاریخ ژاپن را هم که در مدرسه میآوزن باور نکنند. اگر میازاوا کنجی دوباره به زندگی برمیگشت و خودش آن را تصیح می کرد، حرفی دیگر بود. این بحث مسئله موقتی در کتاب درسی ملی بود که در چهارچوب سیاست های کشور تدوین می شد. آن شخص، در جواب همسر آقای میاچی گفته بود از شایعات بیاساس به شدت بپرهیز می دانم برای خرید اجناس بازار سیاه می روی. پس شخصی مثل تو صلاحیت دخالت در مورد کتابهای درسی را ندارد شایع پراکنی در زمان جنگ عمل کردن بر خلاف قوانین مدنی و جزایی است بعد هم به طور تلویحی گفته بود که این کار نقض قانون بسیج ملی است از آن زمان به بعد همسر آقای میاچی مراقب بود، مقابل هر کسی هر سخنی را به زبان نیاورد. در خانواده ما، شوهرم و یاسوکو نهار را در محل کار صرف می کردند. پول غذا را به شرکت می پرداختند و دیگر نهار با خود نمی بردند. بنابراین در روز دو وعده غذا سرفجوی می شد. من هم نهار را با سیبزمینی سر میکردم. به عبارتی، با دو وعده غذای آن دو نفر و یک وعده غذای من، سرفجویی غذا در روز به سه وعده هم می رسید که کمی کمک حالمان می شد. بعد هم اودون خام را که بین عموم توضیح می شد و گاهی هم راهی برای تهیه آن در بازار سیاه وجود داشت با برنج و گندم و معاوزه می کردیم. با این حساب فکر می کنم میزان غذای اصلی برای هر نفر ما سه گو و سه چهار شاکو می شد. علاوه بر اینها نان خشک بسیار نامرغوبی هم به ازای هر خانه حدود سی گرم تازی می شد. اودون در ماه سه یا چهار بار و به ازای هر نفر یک پیمانه تازی می شد. اما به عوض آن تازی غذاهای اساسی را کاهش میدادند دادند. کمی که گذشت، برنجی تازی شد که به آن سویا افزوده بودند و وقتی برای تهیه غذا پخته میشد بوی بدی داشت. بنابراین های آن را جدا می کردیم. یک گو از آن سایا را یک شب تمام در آب میخیساندیم صبح روز بعد آن را با هاون میکوبیدیم و شیره باقی آن را بعد گذراندن از صافی به شیره میسو یا شیره شایو اضافه میکردیم گاهی نیز این شیره را به عنوان شیره سایا با کمی شکر مخلوط میکردیم و مینوشیدیم بعضی وقتها هم تفاله به جامانده از کوبیدن سایا ها را در شیره شایو میجوشاندیم و برای چاشنی غذا استفاده میکردیم. نان را که قضایی جایگزین بود برشته میکردیم و به آن شیره میسو میفسودیم یا اول شیره میسو میفسودیم و بعد از برشته کردن میخوردیم. نان ماده غذایی بود که باعث سرفجویی در مواد غذایی اصلی میشد. هنگام داشتن نان هوس تعم کره و گوشت نمک سود میکردیم. شیره میسو چاشنی با اصالت شرقی است و در مقایسه با نمک و شویو چاشنی بسیار عالی به نظر می رسید. وقتی دوره جنگ شد، خیلی زود متوجه این مسئله شدیم. تازی مواد غذایی مکمل مطابق فهرست زیر بود. چون تازی میان سی دو نفر موجود در یازده خانوار محل سخت بود، آن را بین دو یا سه خانوار تازی می کردند. توفو چهار قاله. ماهی، ماکره اسبی کوچک، ساردین، هر کدام یک قطعه، کلم دو عدد. هویج، تروب سفید، تره، بابا آدم، اسفناج، کدوی مسمایی هر کدام پنج تا شش عدد. بادمجان، چهار تا پنج عدد. کدوی تخم کاغذی، نصف. از زمانی که اعلانهای وضعیت خطر شروع شد، به تدریج وضع مواد غذایی بدتر هم شد. من هر روز برای چیدن اسفناج وحشی، میتسوبا و غیره به فضای باز به وجود آمده در برنامه تخلیه و پراکندگی ساختمان ها میرفتم. برای جمع کردن صدف خوراکی هم زیر پل میوکی میرفتم یا وقت جزر با داشتن قلموی قدیمی شاکو میگرفتم. اول حدود پنج گوه صدف خوراکی جمع میکردم. شاکو هم از چهارده تا بیست و چهار عدد میگرفتم. کم کم جمع کردن و صید هر دو کمتر و سخت‌تر شد. در روزهای آخر جنگ صدفهای خوراکی ده عدد شدند و شاکو هم که دیگر نمی‌شد گرفت. در آن فضای باز با تبعیت از شعار همه که از همه جا کدو تخم کاغذی کشت کند، در باغچه خانه کدو تخم کاغذی کاشتم. چون ساقه‌های کدو تخم کاغذی رشد کرد، آنها را بریدم، پوستش را کندم و در آب جوشاندم. در تابستان کدوی تخم کاغذی تمام سطح باغچه را فرا گرفت. طوری که جای پاگذاشتن هم نبود. اما میوهش خلاف انتظار کم بود و حدود ده عدد برداشت کردیم. تروب، سرخص شاهی خشک شده و سرخص اقابی هم به عنوان غذای مکمل مورد استفاده قرار می گرفتند که از خانه پدری در شهرستان میفرستادند. روز اعلان جنگ یعنی روز هشتم دسامبر سال شانزدهم از دوره شووا برابر با سال 1939 میلادی خانواده ما مقدار زیادی کبریت و نمک خرید و انبار کرد بنابراین تا آخر جنگ از لحاظ کبریت و نمک کم بود نداشتیم این کار را در دوره کودکی از مادر بزرگم شنیده و یاد گرفته بودم خود آنها در زمان جنگ روس و ژاپن همین کار را کرده بودند نمک بسیار به درد خورد باثره حاصل از تصفیه و حذف بوی بد آب گوشت کارگاه تولید غذای سربازان نیروی زمینی ارتش و جات کنسرو سازی را با اضافه کردن نمک تمام جایگزین شوو می کردیم. خوشطعمی غذای حاصل از اضافه کردن یک قاشق از این جایگزین به غذای در حال جوشیدن را حتی حالا هم نمیتوانم فراموش کنم. اما وقتی دو هفته متوادی بدون حتی یک بار توقف از این جایگازین استفاده کردیم از دهان افتاد و بیمزه شد. برنج مصرفی یک روز را صبح میپختیم. آنچه را از صبحانه باقی می ماند، با مقداری از آنچه برای شام تدارک دیده بودیم حتما به نیگیری تبدیل می کردیم. ها را در پوشش زخیمی از پارچه میپیچیدیم و در جای مناسب و محل عبور باد آویزان میکردیم. هنگام اعلان خطر حمله هوایی و پناه بردن به پناهگاه، آنها را با خود به پناهگاه می بردیم. داخل پارچه زخیمی که نیگیری ها در آن پیچیده شده بود، برنج برشته فرستاده شده از خانه پدری در شهرستان را به عنوان غذای مخصوص اضافه می کردیم. بعد حتما نوشتهی زمیمه می میشد که در آن نام اجداد خاندان درج شده بود. فقط انواع ماهی توضیع شده را با خیالی راحت تبخ میکردیم یا گاهی میجوشاندیم با پرهیز از تبخ اجناس خریداری شده در بازار سیاه، آنها را فقط میجوشاندیم و بعد صرف میکردیم. مواظب بودیم بویش به خانه در و همسایه نرود. اجناس شیرین کننده مثل شکر و قند را یا سوکو از طریق همکارانش در شرکت از بازار سیاه می میکرد. این شیرین کننده ها نباتی بودند که کشاورزان در فروی از سفید کردن ریشه گیاه هیگان بانا در آب و نشاسته ی حاصل از آن درست می کردند. همکاران یاسوکو آن را از کشاورزان می خریدند و با یاسوکو مبادله می کردند. با این همه به عنوان چاشنی فقط دو سه بار از آن استفاده کردیم و بیشتر هنگام خالی بودن شکم با حسرت زیاد آن را میمکیدیم در مورد نوشیدنی در محله ما حتی افرادی که قبل از جنگ نمی با ایجاد نظام توضیح شروع به نوشیدن کردند. نشخار عجیبی بود. علاوه بر سیگار سحمیه ای، برک های تنباکوی را که افراد شرکت در بازار سیاه می‌خریدند و بعد به ما میدادند برای مدتی در سیرزمین آویزان می کردیم تا رطوبت بگیرد. بعد، این تنباکو را در برگهای های کاغذ بسیار نازک لغتنامه انگلیسی میپیچیدیم پیچیدیم که با تیغه برش به شکل ظریفی برش داده بودیم و در نهایت میکشیدیم به نظر می جنس کاغذ های لغتنامه از کاغذی به نام کاغذ هندی باشد. خانواده ما از عواست جنگ تا اواخر جنگ یک جلد لغتنامه دود کرد. بعد از اینکه جنگ به نیمه رسید و از این خانواده ها در محله ما حتی با علف وحشی غذا درست میکردند. در خانواده هایی که بچه کوچک داشتند جوانی روز ژاپنی یا روز ژاپنی بزرگ را میبریدند پوست روی آن را می کندند و به عنوان میانوعده به بچه ها میدادند. حتی خانوادههایی هم از جوانه علف ه بند استفاده می کردند. این علف وحشی را از ساحل رودخانه اتا، در هومه شهر پیدا می کردند. بین شاغلان شرکتها، از کسانی که برای کار به هومه می تقاضا میکردند می برایشان علفهای وحشی بیاورند. در همه ی خانه ها، 90 درصد میان وعده کودکان، سویای برشته بود. اما چون سویا تمام می شد، از گیاهان وحشی استفاده می کردند. با درخواست از افرادی که به هومه می ترشک ژاپنی هم قابل تهیه بود. با قرار دادن ترشک ها در نمک برای یک شب میشد به جای ترشی و چاشنی غذا از آنها استفاده کرد. ریشه هلفه، حلفه، گندمک، اسفناج وحشی، سدنا، تانگاراسه شاید این نام ها علمی نباشد و غیره را به صورت خام، آب یا تبخ شده به عنوان غذای مکمل استفاده می کردیم. هویج و ساغه بابا آدم هنوز جاز سبزی های درجه اول بودند. کرم انجیر یا کرم گیاه کوساگی را با شویو حرارت می دادند و به بچه های مبتلا به سوء تغذیه یا شب ادراری می اینها لارو سوسک شاخک بلند بودند. در دوره کودکی من، هیزم شکنی، تابستانها برای فروش کرم گیاه کوساگی به زادگاهم هم می آمد. یک بار برای جلوگیری از ابتلاب انگل به من هم از آن به یاد دارم شیرین و خوشمزه بود. خانم خانه کناری ما که به علت اختلال در یا اسگی سردرد بود، یک تا دولار و آسیابانک را با جامی ساکه سرد نوشید و بهبود یافت. به طرز عجیبی موثر واقع شد. چون از من خواسته شد، تصمیم داشتم فهرست غذای هفتگی خانه خودمان را در زمان جنگ بنویسم. اما برخلاف ظاهر که به نظر می رسد، کار آشپز خانه روزانه تکرار می شود؟ کاری بسیار بی‌نظیر بود و نمی توانم آن را به یاد آورم. شاید اکنون آشپز هتل بزرگ درجه یک توکیو و حتی آشپز هتل امپراتوری هم نتوانند فهرست غذای روزهای آخر جنگ را به روشنی به یاد آورند. در آن روزها در هتل امپراتوری، سفرا و افراد گروه های خارج از وزارت امور خارجه کشورهای حوزه کامیابی مشترک شرق اقامت داشتند. پس فهرست غذا چه باید می‌بود؟ به هر حال بعد از اواسط جنگ در خانه ما در هیروشیما برنج، سویا و تستوکودانی بدون شکر از سویا 60 تا هفتاد درصد فهرست غذایی را دربر بر می‌گرفت. به دست آوردن پروتئین حیوانی چه پرنده و چه گوشت قرمز به طور کامل ناممکن بود. در مورد چای هم قنچه شکوفه های گیراس را به عنوان جایگازین مورد استفاده قرار میدادیم به خاطر اینکه تهیه زغال چوب و زغال قالبی بسیار مشکل بود برای محافظت از سرما، سنگ تخت یا آجوری را هنگام تبخه غذا در اجاق حرارت میدادیم بعد آن را در کاغذ روزنامه های قدیمی و بعد در پارچه میپیچیدیم و پشتمان میگذاشتیم هنگامی که روی زمین نشسته بودیم، آن را لایرانهای من و وقتی روی مبل بودیم، با پا آن را فشار می دادیم. این گرم می شدیم. چون حرارت سنگ رفته رفته کم می شد، به تدریج روزنامه های دور آن را برگ برگ کم می کردیم و از حرارت باقی در جاهای مختلف آن گرم می شدیم. اما وقتی کاملا سرد می شد، باز آن را حرارت می دادیم و به کار می صابون های ساخته شده از سبوس برنج، هیدروکسید سدوم و غیره توضیح می شد و مای آتش شست وشور را هم از بازار سیات تهیه می کردیم. خمیردندان نبود از نمک استفاده می کردیم. سهمیه پیاز هم وجود داشت. پیازها ها رو نمی در زمین می و وقتی برگ هایشان بزرگ می شدد و از آن استفاده می کردیم. بعد از مدتی دوباره برگ ها رشد می کرد و باز آن را می چیدیم. آنچه در بالا آمد، خلاصه ی برنامه غذایی در هیروشیما زمان جنگ بود. فکر می کنم آن برنامه غذایی ما برنامه خانواده حقوق بگیر، معمولی و متوسط رو پایین بود. از قدیم میگفتند دریا و های هیروشیما پربرکت و بخشنده است. قبل از جنگ در این شهر بزرگ، محلات فقیر نشین وجود نداشت اما در زمان طولانی جنگ مردم این شهر در حالی زندگی کردند که از نظر برنامه غذایی در تنگنا بودند به خوبی فهمیدم که چیزی به نام جنگ مرد، زن، پیر و جوان را بازی میدهد و میکشد شیزوما، شیگه کو شیگه را به عنوان زمیمه به یادداشت‌های بمباران اتمی اضافه کرد این مسئله را به شیگه کو گفت و برای رساندن کلوچه های برنجی آین نیایش و پیشکش برای حشرات پیش آقای کتارو رفت. جعبه سنگین حاوی کلوچه ها و تشت فلزی را در ای پیچیده بود که آقای کتارو ماهی لوچداجو را در آن آورده بود. آین نیایش و پیشکش برای حشرات آینی دو روز بعد از روزه کاشت بود. کشاورزان زمان کاشت حشرات داخل خاک را لگد می کردند و می بنابر بنابراین اکنون کلوچه درست کرده و به حشرات مرده پیشکش می کردند. در این روز رسم بود اسباب و وسایلی از همسایه ها را که هنوز در خانه کسی باقی مانده بود به آنها برگردند.